وفیلم پیشکش به تمام مادرهای دنیا سرخ وقتی همه خواب بودند نویسنده و کارگردان فریدون حسنپور موسیقی سعید شهرام بازیگران گلاب آدینه محمد رضا فروتن صادق بهش بیگم بهتر که بعد میگم تهیه کننده فرشته تا ارپور. شای برنجی رو در شالیزار میذاره سپیده یایی به دنیا اومدم شدم حاجی خانم علی که ازم خواستگاری کرد ازش قول گرفتم که من به فرست مکه چهارده سالم بود که توی مزرعه از سر ناچاری بچه زلیخار دنیا آوردم شدم مامای دی و از اون بچه های زیادی رو دنیا آوردم اما یکیشم مال خودم نبود یک بار به علی گفتم زن بگیر همون بار به سید غریب قسمم داد که دیگه هیچ وقت این حرف تکرار نکنه. که و غلام که توی رود خونه غرق شدن علی اجازه داد که محر علی ششماره به فرزندی بیاری. علی همیشه یاد قولش بود. منی انگار قسمت مکه من به عمر اون نبود. دفعه آخره که میکشید. گفت شرمنده تمسلی مجان. نشد. ولی اگر بار زود رسیدی نایب زیاره منم باشه. زنی جوان و زیبا با لباس محلی گیلانی به مردی که کمی دورتر از اون توی شالیزار مشغول کار نگاه میکنه زن و مرد روی پل میستن رودخونه پر آبه و همه جا سبز زنی جوان از روی پر با سرعت به طرفی یک کلبه روستایی <متحن> که بالای تپه دیده میشه حرکت میکنه این کلبه زیارتگاهه بین را مرقا و خدوسا و اردکا از سر راه زن کنار میرن سالها بعد همون صحنه، اما این بار زن خسته تر و کمتوان تر سربالایی کلبر و بالا میره سالها بعد همون صحنه، زن این بار قدم زنان و به آهستگی به طرف کل بمیره اوه سالها بعد همون صحنه، اما این بار زن دست به پشتش گذاشته و آروم آروم راه میره سالها گذشته زن جوان حالا پیر شده و به همون زیارتگاه اومده دسته در نکنه سید بلاخره رو گرفتم شد منی دروغ نشد من حالم کنه سید زن از زیارتگاه میاد بیرون گالشاشو میپوشه و اساشو میگیره دستش از پنجری میبینه که یه پسر نوجوان داره به طرف اون میاد بیبی جان سمعک رو بده پسر سمعک رو تو گوش بیبی بی جا میده بیبی نشه خیلی وقت منتظره بریم بگر نه به خدافز دیران نمیرسی آمدم پسر بچی میره و فرقانی رو میاره و بیبی بی رو میزر توی اون و به طرف پایین به را میافتن ای ناز. ای بابا. دستتو شل من بندازی. یه مرد جوون داره شیشه ای چراغی تیله رو که یه تون از این ماشین های شبیه تراکتر تو کار کشاورزی هست و با دستمال پاک میکنه گلنه سارزم روگون کشم گلنه گلنه بگو با آمد بیوفا تویی یا آمد نه نه نه نه بله نه گلنه نه نه مرد جوان کمی دوتر جو به دختری نگاه میکنه که دم در خونه، داره گاوی رو به دنبال خودش میکشه و به درون خونه میبره پسر بچه با یه تنگ آب که تو دستشه داره به مرد جوان نزدیک میشه آمین هسه حواظت همین جا خونه ما نگاه میکنی نگاه به حواظت داره بچه یه پسر بچه به طرف پدرش که اونو صدا زده میره مرد جوان آب تنگ و روی چرخاب و لاستیکای تیلر میریزه و به در خونه دختر خیره میشه پدر خانواده پشت فرمان ماشینی که دمه دره میشینه مادر و دختر جوان و یه پسربچه میرن عقب و شروع میکنن به هل ماشین از یکی از پنجرهایی خانهی که مرد جوان دمی اون ایستاده یه مردی بالشی رو به طرف زنی پرتاب میکنه. زن بالش به دست به طرف مرد جوان میاد نسیر شب نشده بگردینم. دور بزنین دیگه قول بدین درست احفه دور باشین دیگه اسم این مرد جوان نسیله افا ما اینجا لازم نکرده قل بدید های کریم بفهمه منشهر بپا میکنه حرف رسنید زور بزنید یادی... نسی به حرف زن توجه نمی کنه و به طرف ماشین مرد همسایه میره ماشین روشن شد مرد که میشه اسمش کریمه با عصبانیت از ماشین پیاده میشه کی گفت تو ماشین رو هل اگه تو ناموس سره نمیشه بی غیرت خب اگه گلنار رو به مهدی گلنار اومخ میشه ناموس من همون سفید بخ میشه هم من ماشین تو هر و هلده تو میزنی میده سبر کن تو بازم بزنی کریم تصویب به دست با نصیر درگیر میشه پس تو اون پشت چقدر تو میکردی ها؟ تصویب از دست کریم میفته نصیر تصویب رو از زمین بر میداره و میده به کریم و با سرعت فرار میکنه یه جادی روستایی با همون تیلر در حال حرکتی بیبی بی و پسر نوجوان تو گاری کوچولویی که به تیلر وصل نشستن چه خبرهایی تازه نسیر جان بالاخره مشتی کریم. قبول کرد بری خواستگار گلنار اون؟, اون قبول بکنه ریشش بسوزه لای نفرین عیب نصیر جان نصیر در حال حرکت کریم روی تختی بیرون قهوخانی نشسته بود تصویش رو تو دستش میچرخونه جنیدم رفته بودی زیارت زیارت هم کردم ولی بیشتر برای دادن خمسز کاد رفته بودم پس از الان رفتی فیشواز مکه هاج کریم مش کریم نه هاچ کریم هر وقت مشرف شدم به هم بگین هاچ کریم سلا بهت بر میخوره کریم خیلی تصبیحشون نصف دونه های تصبیه تو رو نداره تا نرفتند نرفتن مردم بهشون میگن حاجی من به مردم چه دارم من نمیخوام حاجی دروغه کی باشن ولی خدایش اگه بیبی نوبت نوبست شو بهت میفروخت و امسال میرفتی میشدی اولین حاجی ده اون وقت تا دنیا دنیا بود میگفتن اولین حاجی تازه آباد حاج کریم بود معلوم نیست که شوخی می‌کنی که جدی حرف می‌زنی. جان کریم جدی میگم. اون یکی کتابی هم به قره‌آجی یه سال دیگه. درنات بر در دل سیاه شیطان. مرد از قهوهخانه با سینی چای بیرون میاد. بی بی دم خونی وای چشماش خوب نمی‌بینه و قیافه آدمو رو تار می‌بینه. سلام دمه فاطمه. دیدی گفتم بی حلالی از تو خدا خدانه میره؟ گلنار گریه می‌کنه. نسیر با قصیب گلنار خیره شده این گلناره ببین ننه جون رو بردیم بریز شهر دکترها گفتن حالا آنها باید بخواه های به این کریم گفتم ننه ای تو این من پاشلب لبه گوره اسم اونو بنویس ویس برای مکه خودت که هنوز وقت داری من خوش نکرد که نکرد میترسم دن فاطمه و اینم اشتصفتر حسرت بده از دنیا باشه. باشه رو بریم نسیر وسیله رو روشن میکنه و برا میفتن زن مشکریم روی پلاهای دمه در خونه کنار گلنار میشینه گلنار سرش روشونه ی زن کریم نذره و گریه بر پسر سرش سرشو به پایین میندازه اگه بابت بفهمه دروغ گفتی هر سه سای ماره توابی قاسم با بابام قهوه خانه پسر یا همون قاسم به طرف قهوه خانه میره بیبی بی جون داره میاد خب بیاد مغز تورم رم خرخور باش کریم بیبی بی حتما حال ننفتی فاطمه از تو میپرسه چیزی بهش نگیه بذار با دل خوش بره سفر یعنی دروغ بگم آدم که خاطر دلخوشی کسی معصیت نمی کنه من مرده منم به دروغ مرده رو زندجا نمی زنم. این دروغ مسلحتی کریم خدا خودش می بخشه. تو نمیخواد برای خدا تاینه تدریف کنی لعنت بردل تو آقا جان تو اصلا این چی نگو نه دروغ نه راست. گناه چم گردن من نسیر نگرده رضا الله حلالیت ب بیبی بی جان سلام التماس دعا بلوان شما چشمت که به خانه خدا افتاد یادی از ما بود <تصفح> این صدا آشناس آقای مشکنیم خونه بیبی بی جان ناراحت نشو دایی چایی میپره تو گلوش مال هننق بچگیشه دنیا که میخواست بیاد مادر خودشو قیله آذار دار بایدشم زفلگ هننق گروه حال <تصفح> کریم نسیر هم همدیگری میخواه تو کار خیره اینقدر نه نیار مرد کلهی پدر نسیر مشکریم بلند میشه کتشو میپوشه و به طرف ماشینش میشه اطلاع یه دستی به این مرده بزن تو جدی روستایی یه نام رسال موتوری به ماشین مشکریم نزدیک میشه سلام آقا شک که دیدم دو تا اوم برده ایتون دارم زمانشون برام میکشه یه می بینی که من پوستم به ده روم بشه نداره ورود که برگشتی بذار سبب داره منم کلی نامید دارم که باید این ده ببرم مال کی هست یکیش مال مساییه به یکیش مال بیبی بیبی کی برای بیبی نامیده داده استازمان اجازه زیارته مشکریم نامه رو باز میکنه و میخونه چشمای مشکریم از تعجب گرد شد. نسیر با تیلر و بیبی که توی گاری تیلر نشسته در حال حرکتن و تعدادی زن و مرد پشت سر اونا دیده میشن نسیر و بیبی از روزخونه رد میشن و بیبی با دست کن دادن با همه اهالی خداحافظی میکنه مردی با کسی برنجی رو دوشش به طرف قهوه خانه میره روی تخت قهوه خانه چند تا مرد دیگه نشستن و دارن چای میخورن مرد کنار تخت کیسه رو زمین میذاره و از فتولا قهوه چی میپرسه فتولا، مسیر ندیدی؟ بیبی بی رو برده تنگروز برای حلالیه ببین چجوری ما رو جا گذاشت. بریم ماشین مشکریم به خانه میرسه مشکریم نامه بده از ماشین پیاده میشه و به طرف مردایی که نشستن رو تخت میره سلام علیکم چی سلام نامه چیه از اداره زیارته نوشته بی بی نمیتونه بره مکه خاطر جواب آزمایش پزشکی یا امامزاده فاری الان چی بکنم؟ هر چی قسمت رابط خدا بیدید. زبونت گاز بگیر کریم. این دفعه رو نمیشه زبون گاز گرفت. بعد راست حسینی رو بهش بگیم. اصلا به خاطر دروغای شماست که خدا جوابش گردید. مشکریم. به دهنت باش. خدا رو غرمیگیرها. مشکریم. تو رو به جانتی قاسم سری بکن تا فردا این خبر رو به کسی نگی. که چی بشه؟ که برم شهر اداره حج زیارت ببینم چه میشه کرد. کله سر خودم میبرم. که بری نوبتشو بخری یا؟ نهنت بردرسی ها جاده ی روستا نصیر در حال حرکتی وای بچه یکی که از مدرسه تعطیل شدن دختر و پسر دور بساطی بستنی فروش حلقه زدن اونا متوجه آمدن بی بی میشن. به سرعت به طرف نصیر و بی بی می بستنی دارم بستنی در جایک دارم. دارم بستنی درجه دارم بستنی در جایک دارم بسنی درجه زیناب که؟ خدا با خدا همی روزا انشالله. زیناب دختر مرد بستنی فروش که لاله به پدرش میگه. بابا بابا بیبی بیبی. نه خدا زیناب خانم بیک کیشه بیبی. کیشه بی بابا بیم. بیبی بی بی داری می‌نیم که کیاش پوشواد میده؟ خدا میدم گل پس اژان. آهاي رجبالی. بچه ها بستنی بده همه مهمان من, من, من. بچه ها به سرعت به طرف بساط بستن فروشی میرن نسیر و بیبی بی از کنار اون رد میشه زینب یه قرمز تو دستشه و داره پشت سر بیبی بی و نسیر میدوهه بابا زینب همچنان در حال دویدنه آلاسکا از دستش افتاد رو زمین. زینب با چوب آلاسکا تو دستش به بیبی بی میرسه. بیبی بی پیشانی زینب رو میبوسه. با با با با با با با با با با با از این بهتر نمیشه این چوب شیرینه میبرم کنار خونه خدا میذارم تا همه بدونن زینه برای خدا بستنی فرستاده کوجا جان آخوی برای فتو آقا به چی؟ یه تو خونه بیبی بیبی داره قرصشو میخوره پسر بچه در حال نوشتن سفارشات بیبیه گل ناره ره. یه چادریه وال سفید غیناه بره یه عروسک نصیره من شما چی میخوای بیارم جان نصیر تو گوش بیبی چیزی میگه بیبی بشقا بی پر از کلوچه به طرف آها. نصیر رو پسر بچه میبره برای نصیر جان بمویس حاجتش بخوام که با گلنار خانو عروسی بکنه برای کریم ویس یه تصویر. اون که خودش ده تا تصویر داره سوغات خونه خدا چیز دیگره پسای جان ملمشتگیر من قد بزن ای ننه فاطمم بنویس یه خلطی آخرت فکر کنم خودش داره بیبی میدونم خدا رحمت بکنم اشتصف داره از مشهد. برای خودش اون آورده بود پسر بچه یک کلوچه بر میداره سر ماه زیارتم که می‌شد، مال خودشو می‌پوشید، میرفت امامزاده غریب مجاور میشد تا عید قربانم با هیچ کس حرف نمیزد مخصوصا با کریم خدا بکنه کاری رو که کریم در حق بابای خودش نکرد برای مادر خودش بکنی خدا رحمت کنه نه نه ف... مصرفت رو صدیگه جون موقعی رفتن حرفای شیرین بزنیم نصیر قاب میزنه به چند تا کلوچه انگار نصیر کمی عقبانه است شب خونه مشکریم مشکرین رو پله ها نشسته گلار پایین پله هاست. از پله ها بالا میره و به مشکرین میرسید دعا کن دروغ باشه روز شده مشکرین با ماشینش و یکی از اهالی عشب برگشته و دم در قفل پالی نگه چه خبر؟ واقعیت داره نمیتونه بره بقید کار تو تو باید بهش بگی فتح الله از من نخوام مهر علی این کار من نیست اصلا کار هیچ؟ که مشکریم از ماشین پیاده میشه و میگه آخه کی دلش میاد این خبر رو به پیرزن بده با قسمت که نمیشه جنگی لابدی خیری درش هست اگه شماها سختیتونه که بهش بگین خب من میگم. آسم پسر مشکریم حرفای اونا رو از دور میشنبه کلسوم زن مشکریم به سراغ مروارید زن مهرلی اومده چی شده مروارید؟ دیگه چی میخوا بشه کلسوم؟ خودت شاهدی هر و چه که دنیا آورد به جای مزب مادرش گفت دعا کن مکه نرفته نمیرم حالا اینه دست مزدش؟ آخه چه حکمتی داری توی شکستن دل این پیر زن که من بنده سردر نمیارم زبونتو گاز بگیر مهرلی؟ چرا کف میگی؟ قاسم همون پسر بچه ای که تمام روز همراه بیبی بی و نصیر بود نباید بذاریم بهشون کن بیبی بی بی. یا سهی دقریم خودت و کلسوم و گلنار غمگین در حال تهیه ی روپ هستن مهرلی من میگم یک کم دیگم سر بکنیم شاید راهی باشه آخرش چی؟ الان بهش بگیم بهتر تا ساعتی که میخواد را بیفته بعد میگم فتولا. آسم و طالب و سرعت به طرف خونه میاد. مشکریم از پرنها میره باره. کتش میگوی مردانه چوبی ایوان میدزه. هر چی شد پای خودت. جواب خدا خودت بده. دست به آسمان میبره و با سختی در اتاق بیبی رو باز میکنه میره تو و درو میبنده قاسم و طالب دوان, دوان به طرف خونه میان مروارید مهرلی، گلنار، کلسون، فتولا اینا همه منتظر و غمگین نشستن مشکریم از اتاق بیبی میاد بیرون قاسم و طالب به خونه رسیدن ولی هیچ کس اینجا نیست دیگه روی آتیش خاموش همینجور مونده طالب گلا رو میبینه که داره گریه میکنه کاش نبیگفت تو بعدش بیبی دیدی؟ نه ایش کسان ایش براتون. همه رفتم. بابا تم <تصفيق> <تصفيق> گلنار گریه کنان از پله ها میره بالا. طالب به طرف قاسم میره. حالا از پله ها میره بالا. دفتر رو که از دستش به زمین میفتن. آرام به طرف اتاق بی بی میره. قاسم سر طالب میاد و دفتر و کتاب های جمع میکنه طالب توی اتاق بیبیه بیبی چادر سفیدی رو به سرش میندازی. بیبی جان سلام سجادی وسط اتاق پنج شده بیبی به طرف آینه کوچیکی که روی تاقچه میره چهره بیبی توی آینه قمگینه بیبی بی قرآن کوچیکی رو بر میبوسه می و به پیشونی میذاره بیبی شروع میکنه به نماز خوندن طالب عشقایی روی صورتش رو پاک میکنه هی دفعه چشمش به سمعک روی سجاده میفته به بیبی بی نزدیک میشه سمعک رو میذاره توی گوشه بیبی بی. بیبی بی با دست به طالب اشاره میکنه از جلو روش بلند شه طالب با خوشحالی بلند میشه و از اتاق میره بیرون سلام بیبی بی. خوبی؟ خوب خوب دیدی؟ دیده. چی گفت؟ طرف آیه کریم شنیدن داره بیبی به سختی وامیسته و نمازشو از سر میگیره طالب با قاسم اومدن کنار امامزاده عارف گوششا بود فکرون نشیده باشه یعنی خدا گونه نشیده باشه ولی اگه بفهمم بازم بهش میگم او حسسان بابای تو خطاب به امام زادی میگه ماله مسخره کردی خودت میدونی از بس نیری کول کرده و اون بردم والله کمر در گرفتم مقابل لیسمو گهس طالب دری گیری میکنه کنه قاسمم طلب به امامزادی قریب نگاه میکنه و میگه دست در نکنه امامزاد غریب یه فکری بسرم زن یه چی شد طلب خودم ببری مکی چی میگی؟ ببریم دامت بگم اونا به سرعت به طرف جادی به راه میافتن فکر کنم هنه زنده باشه خونش رو جامل هست هدو اگه یک ساعته میرشد. طالب و قاسم نخونی رسیدن که توی اون پیرمردی تو رخت خواب با یه عینک قطوری که رو چشمشه خوابیده ما پای نفر بودیم از مندقه دیلمان اشکاب شدیم با پای پیاده پای پیاده؟ پیرمرد نمیتونه بلند حرف بزنه تو حرفم نفر حواسم پرد میشه بهتو که از این مملکت با پای پیاده رفته ت حرفاشو خیلی آرام تو گوشه پسری که همسن و سال طالب و قاسمه میزنه و اون حرفای پیر مردو با صدای بلند به اونا میگه ما پای پیاده رفتیم تا به کاروان برسیم به به چه کاروانی پون ساعت شایدم هزار تا شطور. شطور قاسم و طالب به هم نگاه میکنن گفتم تو حرفم نیا گردن شکسته بیای مدرسه بهت میگم گردن شکرسته کیست اون چی؟ در حرفای پدر رو ترجمه میکنه سازنده بازم بپرس پدر میگه اینقدر تو حرفم ناید معلومه که شده قاطرت تا نمیتونه یک ساعتم تو سرای عراق دوون بیاره پدر میگه سب کنی تا از اول سفر براتون تعریف کنم ما پنج نفر بودیم رای خانه خودش شدیم آسم با ناباوری میکوبه تو سر خودش چرا بدونیم؟ چطور مین مکه؟ و برای اینکه ببریم از ما بقایم واقعا ببریم مکه تازه به بیجاو خودش رفته که بدونه نه ما میدونیم چطور می نهون بیبی جا شنیده ما هم ما وای بی رو با گوش ببریم مکه نهباش قااصل ولی بیبی که می بیننه چطور ببینه نیدی گلنا رو بن فاطمه عوضی گرفت اون فقط بیبی من نیست بیبی همه شماست اگه شما کمک کنی قول میدم که میشه این کار کرد ولی نباید بذاریم و دکتر را بفرد چون میگن نمیشه یا گناه داره ولی من مطمئنم که خدا خودش کنمه قاسم و طالب از خونه پیر مرد اومدن بیرون. قاسم و و بقیه بچه های مدرسه دم امامزاده جمع شدن لبک لبک اللهم لبک لبک لبک اللهم لبک طالب داره با ضبط سود صدای لبهی که بچه ها رو ضبط میکنه مهرلی از پشت پنجره به اتاق بیبی بی نگاه میکنه و به مورفاریت میگه چرا اینقدر ساکته؟ بسه به حال خودش بمونه پرس قلبشو دادی؟ دادم طالب و قاسم روی نردبونی که به تلی از کاه تکیه داده شده نشستن باید قبل از, از اون صبح رو بیابتیم تو راه دیگه بلدی؟ نه اینکه با او میذا دست بهگه اگیش بزنم؟ بس پای نصیر خبر کنی چی؟ بگه اون طال پشت دو نشسته چه فرقی میکنه مهم گاز فرمونو گرد و توشون دارن رااض میگفت تو سروازی راندی جیب بوده صیر به بچه ها میگه همیشه بدونلم بود که یه روز میرن زیارت و خونه خدا. خوددا. جان، حالا بلدی دوج مشکریم برونی عین اسب بچه هنوز. ا بقیین تیره خیال میکن جامشه. دلر عین قاتل ناسم خیلی خوب دیگه پس بس نسیه قرارمون قبل از اذان صبح جلوی خونه قاسم خدا فهمیده اگه فهمیدی بگو چی گفت یسد مونده به اذان صبح جلوی خونه گلخانه‌ فهمیدی آسم با عصبانیت به طرف نصیر میره گفتی یا حمولوکم آقا زین پس ما حمو گلان بیرمندی که نیستا تو وان قاسم حمو گلاره حمو گلانه واسه پرنگ ما مردیم. یزان پای باشا gibi bibi اگر خونمون میرزه اگه همه هم راضی نباشه چی؟ خانم با من صبح سپیده نزده وقتی همه خوابن نصیر سوار ماشین دوج مشکری میشه چرا این همه؟ بابا حاضر این هسته؟ حاضرم حاسم بودا بیا بریم دیرگردیم تعدادی زیادی بچه هایی هر سنسان خاص مطالب اومدن تا ماشین و هول بدن گنلار از طبقه بالا پنجری رو باز میکنه و میبینه که ماشین حرکت کرد گنلار سری میره تو بچه ها ماشین رو هول میدن با دنده ماشین تقلا میکنه حالا بکش دنده روشن میشه خودم بلدم انه هم میکشم بلدم اما دنده جا نمیره ماشین به یه خیرمن بزرگی گندم برمیخوره و متوقف میشه بچه ها به دنبال ماشین میدونن نسیر از ماشین پیاده میشه نسیر نسیر سالمی سالمم مانونی که سالمم چی هنوزه با گلیت کار درسته میشه اگه برای خونه بابا من میکنه ما به خونه نمیدیم تو همه جا باش ما میدیم بیبی رو میاریم سر را سوالت میکنیم سوال چی؟ چیلی رو چی؟ جی... من حاضرم بریم بیبی در حال نماز خوندنه حال پشت سر بیبی استاده بیبی چدور نمازیشو از سرش بر میداره؟ به طرف پنجری اتاق میده و اونو باز میکنه بیبی جام را بیفتیم کجا؟ مکه منو بچه ها باید ببریم لایتون بیبی بریم دیر میشو مگر وقت بیبی اصاش رو بر میداره و ناراحت و قمکین پنجره دیگه رو باز میکنه و میگه با دیل خودم چی بکنم؟ با دیل شما بچه گنار و طالب دم اتاق بیبی منتظر نشستن ایچی نگفت رفته خودش اونگاه رفته اون دنیا که نیاد بیبی در اتاق باز میکنه هی بخشی کوچولو و اساشو تو دستش داره گالشاشو میپوشه و به طرف اونا میره دیگه هوا روشن شده گلی گوسفندا تو سهر دیده میشن تیلر نسیر تو جاده به را افتاده مردی سوار بر اصف از دور نسیر و بیبی و گلنار و طالب و قاسم را میبینه بیا بیا سلام عظیم مرحب تو جان سلامتی میریم خوانه خودم مردی در حال کتاکاری مشکریمه شدیم میشه این جوجه سابمرد تو فوی گنده من چیکار میکنه یکی به من بگه تا خودمو این مشکلیمو نپوشم به پیر به پیغمبر قسم منم نمیدونم این سابمرد چطور اومد اینجا اما من میگم نخیر اگه تا پزی ها نگاتریه ماشینه که سراسیدی اونم تو آموزشتر اون رفته اومده تو زندگی من همسیر اگه خودش را افتاده اومده این همه جذره چه جوری چه پراست پیچیده تیلر ناصیر تو جاده ای که از وسط روستای سر سرسبز میگذره در حال حرکته نصیر نگه میداره بی, بی بی حال سرشو گذاشته روشانه گنار مگه خونه خدا تو داشته در رس کجاست؟ همون یکی وقتی دعا میکنیم دستانو اون بری بالا میگیریم اون بالا خیلی بالاتر از عبران بالاتر بالای سنگستی ها اصلا فکر نکنم شما بطور بیایم اونجا بچین هنوز ولی من بیجان رو با خودم میبرم خودم میشه هم هایز نسیر گلنه هم میشه زن عجیب بی بی جان خودت به اینا بگو جاده سنگ سیاه کنون مره سنگ نص سیاه نصیر جان نصیر سیاه به راه مرد سوار بر از به جمع سنبری مشکری موزانش رو مهردی میرسه داما جان فکر کردی این دوژه آبجه من هیچی نخورده برات کار کنه بابا ماشینه باید بنزین بریزی تو هلقشا راه بره تو دیگه چاک دهن رو تو ببن اباس خلی من نمیدونم امروز تو این آبادی چی خبره دوش هوس گندم جو کرده جماعتی هم راه افتادن جاده یلاق میخوان برن خانهٔ خدا رو میگه اباس خلی یکیش بیوی خودت نسیر سوارش کرده بود گفتم نسیر کجا میری گفت دانین میریم خانه خدا دیگه کاریش نمیشه گر. ابجی، کولار گاسم هم همراهشون بوده. یا <تص> حضرت او نه کجا رفته بود؟ بده کجای مشکری؟ با عصبانیت افسر اسب مردو میگیره و میره. نصیر تو جا دیروسی در حال حرکت. مشکری سوار بر اسب به سرعت در حال عبور از جاده از کنار گلی گوسفندا میگذره. مهرالی و زن مشکریم و برادرش پیاده به دنبال مشکریم به راه افتادن <تصفيق> نسیر توقف میکنه روی تپهی سمت چپ جاده یه قبرستان دیده میشه سر مزارها پرچمهای ایران افراشته شده تکوتو زن و مردایی هم کنار مزارها دیده میشن بیبی بی اومده و کنار قبری میشینه گلنارم اومده نصیرم اینجاست اون به سنگ مزاری بی نامونشان دست میکشه طالب و قاسمم اینجا قمگین خیره به قبر را همی جور زنی چادر سیاهشو به سرش کشیده و کنار مزاری نشسته و داری گریه میکنه اونجا کجا هست خانم؟ اونجا باقی شهدای بینامونشونه مادر مراب کعبه اون سرزمین جام ببریم مراب کعبه I'm standing on the از قبرستان بیرون اومدن سرتاسر سر دشت و مه گرفته اونا بی از جده های مه گرفته در حال عبور هستند. مشکریم سوار بر اسب با سرعت در حال عبور از همون مسیر هاست توی سربالایی تا از دست میره و از اسب میفته پایین تیلر نصیر وسط به مردی میرسه نسیر نگه میداره زن مشکریم و برادرش و مهرلی پیاده در حال عبور از همون مسیر هستند هستن مشکریم رو زمین میفته اسبش کنارش ایستاده. اون یواش یواش بلند میشه دست به بدنش میکشه انگار باورش نمیشه توریش نشده مشکریم دوباره سوار اسب میشه و به تاخت میره مشکریم حالا به همون قبرستان شهدای بینام رسیده از همون زنی که کنار مزاری نشسته بود میپرسه دی دی دی باتیلر از این ورا دیدم چه نفسی داشت ببیشون رفتن بالا سمت ییلاق صفا خیلی جلوترن اگر تو راهنمونن بله ناصیر و تیلر رو مسافراش دارن از این جدی جنگلی که پوشیده است مه عبور میکنن متوقف میکنه طالب از تیلر پایین میاد و به طرف سرازیری تپه مقابلشون میره این صدای قدم زن مشکریم برادرش و مهرلی تو گلولای جاده است حیوان باید چونی مشکریم خدا به داده همه منبرسه نه درس. سالمه دوباره سوار شده رفته خدا میدونه چه بلای سرا قاسم و نسیر و گلنار بیاره به به راه میفتن طالب در حال برگشتن به طرف قاسم و گلنار و نسیره اگر جرا بریم بیبی اتمن میبه حالا باید چیکار کنه. بیبی روی علف های سبز کمی دورتر از جمع اینا داره نماز میخونه نجبونیم برگردیم دیگه نمیتونیم برگردیم یه جوری داره با خدا صحبت میکنه داره ای کاشی یه قاطر داشت من قاطر خودم کولش میکنم اون وقت نمیگه همه با تیاره میره خونه خدا اینجا کجاست که شما منو کول کردین خب تیاره هم از این مر میره خب از این میان از, ا... از این مر میره نصیر با سری که رو به آسمونه میخواد جهت حرکت تیاره ها رو نشون بده که چشمش به تلکابینی که در حال حرکتی میوفته. اول با تیلر رفتم بالا بعد باز برگشتن سر دورا با سلام و صلوات رفتم پایین گفتن میخوایم بریم سوار تیاره بشیم بریم خونه خدا قبل از شما همه هم اینا رو به این مرد سواره گفتم فکر کنم بدونم کجا رفتم بیبی بی با چشمای پر از اشک داخل تلکابین وسط گلنا رو قاسم نشسته روبروی اونا نصیره با ضبط صوتی که تو بغلشه طالب و یه مرد جوان سیاه چهره تلکابین حرکت میکنه اونا توی تلکابین از روی تپه ها و دشت سبز میگزن از تلکابین پیاده شدن گلنا رو قاسم زیر بغل بیبی رو که با اساش به سختی را میره گرفتن نصیر با کیسه و زبطه سودی که تو دستشه به کنار مردی میرسه که مشغول هرس کردن درختای دور مزرعه است. نسیر داس سلام. سلام. از مرد میگیره. نصیر برای بیبی از تنه های درخت ها یه تخت روانی درست کرده. که بیبی رو گذاشتن توی اون و خودش و گلار دو سر تخت گرفتن و دارن بیبی رو میبرن طالب و قاسم پشت سر اونا در حال حرکتن مشکریم بیسگاه تلکابین رسیده تیله رو میبینه که همونجا مونده سلام, سلام. ندیدی این که با این تیله رو اومدن کجا رفتن؟ چرا؟ سلاوات پرسودن و سوار تلکابین شدن من رو میخوام سوار بشم این وضعه؟ کدوم هست؟ منظورم اینه با این همه و میخوای سوار بشی؟ مشکریم کتی رو آویزون میبینه اونو برمیداره و میره کاروان حج بیبی بی در حال پایین آمدن از تپس بیبی بی روی تخ با چشمای تقریبا بیهار نشسته نصیر به سختی به عقب برمیگرده و لبخندی به روی گلنار میزنه خستگی از صورت گلنار میباله طالب و قاسم هر کدوم با ای که رو دوششونه تلو تلو خورن به دنبال تخت راه میرن تو جادی مقابل اونا با سرعت مردی چیزی رو که مثل یه باریه که روی زمین کشیده میشه و داره به دنبال خودش میکشه به طرف اونا میاد مرد به قسمت هموار و صاف جاده رسیده کاروان حج بیبی هم به اونجا میرسه. اونها یواش یواش به هم نزدیک میشن. کنار هم نگه میدارن نصیر و گلنار تخت بیبی رو زمین میذارن. بیبی به بار مرد نگاه میکنه. یه زن حامله است. عجو جاه دردش نزدیکه تا پایی نرسیده بچه میاد خونت کجاست سیاه سیاچادرهای روستایی همون زن و مرد بیبی منتظر نشسته وزیر لب دعا میخوا ناله های زنه که در حال زایمانه بیرون چادر و نسیر و طالب و قاسم و دختر بچی که نور آتیش نشستن و دست میزنه با پا دارم بیبی خونش هیچ نترس راحت تو شکم میچرخ. چرا خودش نمیده کمک دستش نانه داره چشماش هم خوب نمیده بدهی چی؟ هیچ کسی که دست بیبی سریزه نام نرفته نگاه بکن همه رو بیبه به دنیا آورده شاخش امشه یا بین را تو جاده مونده آتیشی روشن کرده و کنار اون خوابش بود از خواب بیدار میشه با وحشت با اطرافش نگاه میکنه حالا این طرف کنار سیاه چادر مرد و زن روستایی شوهر زن زاؤو رو میبینیم که داره یه لحاف و رو بچایی که کنار آتیش خوابشون برده میکشه نصیر بیدار و داره چای نکنی بیبی بیدار بی بی و منتظر در حال دعا خوب پشت در اتاق زن زاؤو نشسته نانا نداره زور بزنه این داره از حال میره نه ترس برنار گیستش و گوله بکن توی حلقش باقش میگیره زور میزنه خرشید یواش یواش طولو میکنه سر تا سر آسمان و افق قرمز و طلایی شده نور خورشید تو آب برکه کنار سیاه چادر میدرخشه وای گلنار با یه نوزادی که پیچیدنش لای قنداق از داخل سیاه چادر میاد بیرون ناصر میاد کنار گلنار و با لبخند به نوزاد نگاه میکنه و همینطور به گلنار بیبی بی یه یکم دورتر از است. اونا به طرف بیبی بی میرن سالمه بیبی جا مادرشی بیار ولی بخوش بای جا اخو اخو <تصفح> خدا خیرت بوده بیبی جا اون درم مدیونه تا اول ممنون خدا باش بعد گلنار از پا می افته و کنار همون وسیله ای که زن حامله با اون هم میشد میشینه. می, شود می شینه. نصیر با نگرانی به طرفش میره و کنار اون میشینه. شینه چیزش نیست زعب کرده منم اول بار هم اینطور بوده آب بده. نصیر با سرعت بلند میشه و میره یه یه مشتقند توی لیوان آب می ریزه و شتابان به طرف گلنار بر می کرده. بخوره، بخور نه سرس نه معلومه که خوبی تو از همه بهتری تو گوشش ازم بگو ببی نفس حقی <تصفح> خدا عمرت بده بیبی جان اله خدا خودش هرچی میخوای به تو بده بیبی بی دیگه خدا چی میخواد همین زیارت مکه رو میخواست که اون هم داد. نصیر و گرناب با لبخند به بیبی بی نگاه میکنن بیبی بی نوزاد و میبوسه. کاروان بیبی بی در حال برگشته دارن از جاده های کوهستانی عبور میکنن بیبی حالا دیگه از حال رفته نگه در نسه حال بی بی بد شد قرصاشو نیاوردی یه بد بشه چی؟ میخوای شما بریم من برم خونه قرصاشو بیارم بچه تو اصلا میدونی چقدر را آمدی زرتو زورت میکنی؟ قاسم آب بریز که بدستم قاسم از کوزه ای آب میریزه رو دست گلنار گلنار های خشک بیبی بی رو خیس میکنه و شانه های بیبی بی رو میمالی بیبی جان جا مونده برگردیم بره ایم. کجا مونه بلاده مگه خودت نگفتی وقتشه مشکریم به میانی راه رسیده با پای پیاده در حال رفتنه کاروان بیبی بی دوباره به راه میفته طالب آب بده تخته بگیر طالب آب آبو میده به نسیر آبی تو کوزه باقی نمونده سه نفره زن مشکریم و برادرش و هم تو جادی روستایی در حال دویدن طالب و قاسم و نسیر و گلنار دوان دوان از چهار طرف تپه ها توی نقطه‌ای به هم میرسن. پیدا نه، تو گم شده. یعنی ما گم شدیم؟ گم میشه. و چی میشه؟ بیبی روی تخت روان که حالا زمین گذاشته شده دراز کشیده و چشم آسمان دوخته. او به سختی نفس میکشه دست به گوشی شال کمرش میبره سمکش درمیاره و میذاره تو گوشش صدای رودخونه رو میشنوه به سختی از جاش بلر میشه و میشینه بچه ها رسیدن کنار تخت بیبی بی ولی بیبی نیست ای بای گانر گفتم ها بیبی مرتفه خیرم نمیشه حتما نمیده در مال ما به طرف صدای بیبی به طرف صدای بیبی میرن که بیبی؟ مه سر تو سر دشت رو گرفته بیبی بی از چشم آب میخوره هی کردم گنه آخان. اینجاست سلام سلام جا. جا. اینجا، اینجا. نمیخواد بسوزه. چی چی آه آه نصیر نراحت میشه و از اونا فاصله میگیره. اون دوباره به طرف قاسم میره، ولی بازم برمیگرده. گُلنان میاد و قاسم رو از نسیر دور میکنه. من دیوونم؟ بله، تو دیوونه‌ای. تو خود خبر نداره. همه میدونه. نصیر با سرعت از گلنار و قاسم دور میشه او دلخور و یه گوشه دورتر از اونا میشینه رو زمین گلنار از دور با اندوه به نصیر نگاه میکنه بیبی بی زنان به نصیر نزدیک میشه و کنار اون میشینه قاسم خجالت زده از دور اشک می ریزه طالب با نگرانی از دور به نصیر نگاه می کنه نصیر جا آقا نصیر به من میگه دیوونه من دیوونم من که از بچی که بارم رو دوشه هیچی نبوده من که آزارم بیش هیچی که من که كب باید که به همه پول قرض میده من می من دیوونم بیبیر راست میگه همه میگه من دیوونم جا. اگر من همینجا با صدای بلند به همه بگم که نصیر از تمام آدمایی که من به عمرم دیدم هم آقلتره هم بهتره آروم میشه جون هلا پشم باشه صورتت آب بذار راه دراز جان نصیر عشقاشو پاک میکنه و دست به صورتش میکشه از حالا به بعد هر کس حرفای ناجور به نصیر من بزنه معلومه بچه از خودشانه تو <تصفح> نصیر میخنده و به گلنار نگاه میکنه حالا گلنارم میخندی مشکریم همچنان در حال دویدنه به مردی چادرنشین میرسه سلام, سلام علیکم ها اون ندیه پیرزن با چنتوبچه و جوونین شو دیدم یه پیرزن بود بهش اسم مردن بیبی جان با دو, دو بود با نصیر بود و با نامزدش خدا خیرشون بده رفت پیشواز عید قربون اونه که میگه نامزدش نیست هست، شما که من ندادی من درد دلش حالا کدوم بری رفتن رفتن سنگ صفا مشکریم از کنار گلی گوسندان میگذنه کاروان بیبی در حال عبور از جاده کوهستانی در ارتفاعات کوهی بلند هستند. گذشتن از جاده کوهستانی سخته. اینطور که ما در این میریم می‌ترسم به خود خدا برسیم. زمین از کولهپشیش پاشیشی وسیلهای جا موند باران شروع میشه اونا در حال حرکتند بیبی دست به صورتش میکشه مشكرین به همون جادهٔ سخت کوهستانی رسیده و داره بالا میره کاروان بیبی بی به کنار تک درخت بزرگی تو دل دشت رسیدن آتیشی روشن کردن و دارن خودشونو خوش میکنن گلنار از پشت درخت بیرون میاد لباسه خیس بیبی تو دستشه بیبی بی بی با چادر و لباس احرام زنان آرام از پشت درخت بیاد بیرون سیرو ها با تعجب به طرفش میاد. نسیر مقابل بیبی بی زانو میزنه و گوشه لباس یک سرسفیدشو به صورت خودش میماله و میبوسه. درمش حالا به همون جایی از جادی کوهستانی رسیده که طالب زمین خورد اون چیزی که جا همون برگه که تالب اون شب داشت سفارش های بیبی رو روی اون میدرشت برای فتولای پیرهن برای گلنار چادری سفید برای زینب یک ارسک واسه نسیر حاجتشو بخم تا با گلنار ارسی کنیم یا حاجتی برد رو با با عصبانیت تا رو مچاله میکنه و میره جمعه سنفری زن مشکریم و برادر جمهرالی هم به همون نقطه میرسن مشکریم به کنار همون تفت درخ میرسه دود از زغالای آتیش خم شده بلند شده و به آسمون راه گرفته کاروان بیبی جلوتر در حال عبور هستند دشت پر از مه مشکریم در حال رفتنه جمع سه نفری زن مشکریم و برادرش و مهرلی کاروان بیبی مهرلی از تپه چار دست و پا شروع میکنه به بالا رفتن اون به بالای تپه میرسه مه سر تا سر منطقه رو گرفته. بیبی به سختی اصازنان ولی با لبخندی بر لب به یه تخت سنگ بزرگ نزدیک میشه نصیر و گلنار و طالب و قاسم خسته و نفس بریده ولی مشتاق پشت سر بیبی بی حرکت میکند. مشکریم از دور اونا رو میبینه و توی فاصله از اونا میمونه جمع سنفری زن مشکریم و برادرش و مهرلی به مشکریم میرسن بی بی بی به مشکریم به تخت سنگ نزدیک میشه بیبی از دور به مشکریم نگاه میکنه مشکریم به اون خیره شده گلنار سرش رو به تخت سنگ تکیه داده Nasir با نگرانی به بیبی نگاه میکنه. این کارا همه گناهه محصیت بیبی که داری دورش میگردی فقط یه که سنگه مگه دیوونه شدی آه اینجا که مکه نیست بیبی بی همه دارم یک دروغ میگن مگه من به نگفتم نامامونده که حج نمیری خدا نتره بیبی بیبی آخر عمری آوردنت یک مکه دروغی باور کن اینجا خونه خدا نیست دهن تو گابه مشکریم لعنت بفرست باش شیطون بسا یکی حقیقتو بش بگه این فقط یه سنگ سیاهه دل تو سنگ سیاه, سیاه مشکریم شیطون به جلدت رفته بیبی اساس زمین میندازه تکه سنگ کچولوی رو از زمین بر میداره و سوی مشکریم که مقابلش کمی دورتر ایستاده میندازه بیبی به مشگرین پشت میکنه و رو به سنگ حرکت سمعک بیبی بی از گوشش میفته. بیبی پا بهنه به سنگ رسیده سنگ و تواف میکنه و دست میکشه به سنگ. بیبی بی کنار تخت سنگ به زمین میفته و دستاش باز رو به آسمون میمونه. من من <تصفيق> نصیر و گلنار و طالب و قاسم خودشونو میرسونن به بی بی ما خدا ما رو برس خودش محلی همونجا بود من فاطمان بود عین جوانی هاش به های صفتر آماده بود های صفتر احرام تنش بود و بود بگو اینقدر تلخی نکن پسر سال دیگر مشرف میشی چند بارم سفارش نصیر کرد نه بابای کلسو من بوده بایی مد بدخوا آه. آبی مادر خودمم دیدم کنار کعبه بود و من گفت دیدی سلام جان الاخره نایب زیاره همه ما شدی همه مادره بود همه مادره مادر دنیا بیبی بی توی رختخوابی دراز کشیده ملافهی سفید به روش کشیدن مهرلی و طالب و گلنار و نصیر دور رخت خواب اون نشستن همینطور کلسوم و برادرش مشکریم بیرون شرمندی ایستاده. مشکریم سرفکنده از اونجا دور میشه نصیر و مشکریم با باری پر از بستایی سوقاتی چه میخوایی بپرسیم؟ خدا پدرتو بیام مرزه. داشتم خفه میشدم میخواستم بپرسم این سوقاتی ها برای کیه؟ مشکریم یه نگاهی به نصیر میندازیم سوقاتی بی آفرین آفرین؟ اه... دست درد نکنه آقای کریم فکر نمیکنی م... یعنی مطمئنی چیزی رو یعنی یه چیز رو از قلم غ... ننداختی مشکریم لبخند می‌زنه نه قرارشو هست اساس اساس منم هست بیبی بی اومده امامزاده روستا دست درد نکنه سیه دیگم سیده قریب سبر نمی هیچ جای جایین خای که خدا قربت نیست قلبت که دل ما بندرست طالب و قاسم بیرون امامزاده با فرقون منتظر اونم اونا سوار میکنم و به راه می زینب دختر لال مرد بستن فروش به ایوان خانه بیبی دست میکشه و از دور آمدن بیبی رو با خوشحالی تماشا میکنه این برنامه با صداوبرداری همکار گرامی آقای علی حاجی نوروزی، تهیه کنندگی همکار گرامی آقای فرشاد آذرمیان و تنظیم و اجرای من شمسی صادقی به شما تقدیم شد. تا فرصتی دیگر خدا نگهدار.